اله فصل حج هم رتیده. بعد از ماه مبارک رمضان دیگه حج و حال هوای حج بی آید که ماه های حج شروع میشند و و حجاش هم در ساره عرفات می و یک ندا و یک صدا و لبه لبه گویان از هر طرف جهان به طرف سردمین حرم سرازید می شمان. خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام در سو دادن که وقتی بیت الله بنا شد که بربالا بر این که حالا ندا بده و الناس مردم فرا بخم به طرف حج چیکار میکنن؟ مردم می, مردو می سوار و پیاده از هر درهی از هر کوهی از هر بیابانی از هر جهتی به طرف مکه مکرمه سرازیر میشن. شن می کسانی که در اون زمان اون ندای راهیمی و گفتن به طرف مکه مکرمه سرازیر میشن، یک زمانی و دیدار بیت الله و نهان نصیب می شوان. نائل شرف می شوان. و خود بیت الله و طواه بیت الله و حضور در سهره عرفات اون همون ندای ابراهیمی علیه صلاة و سلام هست خداوند متعال فرمود از هر طرفی از هر دره از هر بیابان انسانها ها میشن اونهایی که مسلمان هستن و ایمان آوردین قلبهای ای همه مسلمانها در هر کجای این کرخاکی باشن قلبها منجا چسبیده آرزو دارند یک بار این بیت الله نزدی ببینی که متاسفانه امروز ببین ماوارها هر روز بیت الله نگاه میکنن اون شوق از دلها کم رنگتر شده زمانی که نمیدیدن دیدن خیلی زیاد شوقی بوده علاقه زیاد بود از بس 24 ساعت نگاه میکردن دیگه اون علاقه کمتر شده اون عشق علاقه بیت الله کم رنگتر شده درسته نه خیلی کم رنگتر شده اونها قبلا که در فکر همین در آرزو چگونه هست ای کاش اونجا رو از مردم، اونجا اخبارها رو میگرفتند شوق بیت الله زیاد میشد هم متاسفان حالا دید کامران شده و لما میگوین اونهایی حتی در حرم زندگی میکنن گاه گاهی از مکه برن بیرون تا دوباره عشق مکه دو پیدا بشه یعنی زیاد داخل بیت الله ویوانا آدی میشه و محبت میاد پای میگه برن بیرون اشتر چند وقتی فاصله بگیرن تا دوباره مشتاق دیدار بیت الله و حرم بشن تمام انبیاء الهی به طرف مکه مکرمه رف انی بیا الی رفته حج کردهاند آدم على حصلات وصل اولین حاجی اولین حاجی که حج کرد بتر رو، اون هندستانی بود اولی حاجی که حج کرد ب رو، و هنندستانی بود و اولی پیغمبر یا بود. ح آدم هست چ آدم در کوههای هندوستان به دنیا فرود کرد و در کوه های هنندستان زمین آمد اولی حاجی آدم حصلات وسلام است اولی پیغمبر هم آدم هست او اولی انسان هم هندوستانی هست پس هندوستانی هر دوست داری چونکه اولین از هندوستان آمدیان حالا آدم علیه صلات و اونجا رفت بیت الله رو تواف کرد نم... چون بانی بیت الله ولی اینکه است در این مورد اختلافات زیادی هست بعضی میزیان که بانی اول فرشته ها و دو اونو بنا کردیان انجا الهی بیت الله میرفتن و تا میکردن. می کردن نبی کریف فرمودن او حضرت یوروس داره یزیbr پایین و لب فيقلين، مطراح محمد کردن می بیرین ایون سرح داره میگه لب ایک اللهم لب ایک لب ایک لا شن goalکل habr ایک داره میره بتار بیتiv الله وجای فرمودن که همون موسی علیه سلطه و سلطه داره بتار بیتو الله میره و لب ایک لب ایک داره لب ایک اللهم لب ایک لب ایک لا شن goalکل х name داره بتار بیتو الله میره و. وگاه صابودکی عیسی علیه الصلاۃ و سلام که با دو بازو فرشتہا گرفتن و بیت الله توواف میکنند انبیا الهی همه رفتن به طرف بیت الله و اون توواف و یک وقتی که در طوفان نو علیه الصلاۃ این حرم مکی و بیت الله طواف کردوران یک تپه سرخ رنگ اونجا وان مرد اونجا میرفتن دعا میکردن دعا اونجا قبول میشه در خود جایی که حرم مکی هست و بیت الله قرار دارند میگن نزدی چهار هزار پیغمبر اونجا دفن هستند یک روایت تاریخی بیست ما داری روایت تاریخی هست میگن تا چهار هزار پیغمبر اونجا دفن هستند این هم پیغمبر برای تو و بیت الله اونجا سازیده میشوند ابراهیم و السلام الله رب العالمین میخواستند که این بیت الله دوباره تعمیر بشه و دوباره بنا کرده بشه یعنی تعمیر بشه تعمیر چیزی تخریش شده رو میگویند وقتی که ابراهیم علیه الصلاۃ و سلام از سرزمین عراق به از طرف الله رب العالمین معمودیت گرفت که برو به طرف سرزمین مکه مکرمه و حضرت رو اونجا رها بکن به هر آبادی میرسید حاجر که میرسید هاجر می‌فرمودند که اینجا هست که ما باید بریم و این گفت نه جلوتر برید جلوتر برید جلوتر تا این به کوه به مکه مکرمه رسید حالی مکه مکرمه جایک بیت الله هست حال کوه رو برداشتن سال 82 م رفتن خیلی گونجا بود حالا میره کوه نیست حالا جای که بیت‌البس و حرم است همه داخل کوه ها بود که بیت الله بین کوه ها بود جای خیلی کم مختصری وجود دارد هر طرف کوه بود هر طرف باکی مکرب کوه های زیادی بودن اونجا که رسید وادی لمیزره هیچ سبزی اونجا رشد نمیگه هیچ بوته اونجا نمیروید آب اونجا نبود پرندگانی که در فضا پرواز میکنه پرندی اونجا نبود چون آبی اینجا نیست هیچ اونجا نبود اونجا که رسید ابراهیم امین گفت اینجا رها بکون اونجا وقتی که رها کردن ابراهیم علیه السلام حضرت حاجر ام اجازه همینی صحبت میکنه ابراهیم علیه الصلاۃ و السلامی که سالها سال در حسرت یک بچه بود به سن 70 سالگی بعد میگن 90 سالگی رسیده بود بچه دار نمیشود به اون سن بالا رسیده بود حالا خیلی جهات روایت عمر کرد حالا در سن پیری اسماعیه علیه السلام و صلی الله بیش داد در دا حسرت ایک بچه بچه, بچه که متولد شد حالا وقتی که سالها سال کس دنبال بچه باشید بچه متولد بشه خیلی محبت و عشق بچه میری بالا این عشق خیلی فوارمی که عشق بالا بوده. اینجا بچه دار شده. خداوند متعال در داد که این بچه رو با مادرش در همین وادی رها بکن نا آبی هست و علفی هست نه پراندی از نخزندی هست هیچ فریادرتی اونجا نیست هیچ انسان اونجا نیست پیشکر رها بکنم امر الهی بود چه رها کرده بی حق صحبت حمله داری خدا حافظی هم نیست رها کن برو بر اونجا وقتی رها کرد اونجا گو حاضر علیه السلام ما را چرا رها میکنی بی امید کی رها میکنی پیشکر رها میکنی جواب نمی رسے. اسرار میکردن جواب نیست دردناک بود دردناک آقای حضرت حاجه فرمودند که الله امر کرده گفتند سر فقط تکران داد که بله امر الهی است. اونجا گذاشت رها کرد جایی که حضرت ابراهیم رفت به طرف زمینشان طرف شمال به سلام مکیه هست علا هم میگن که باب شام هست باب شامیه اونجا وجود داره در حرم هم ساله اول که ما هم مسجد بسیل مدعا میگفتن توی بسیلی یک وادی بود، یک دره بود، حالا دره هار مسطح که دره حالا نیست حالا کسی هم هیچی هم نمی دونه دره کجا بوده این وادی کوچه بود اصلا مدعا هست ابراهی نهار را را کرده اونجا ابراهیم نها نهار می دی اونها ابراهیم شاهده نمی کردند. وقتی که دید دعا کرد که خدایا این از کنت من ذریتی به وادن زرع اند به بیت محرم خدایا اینها در یک وادی لمیزرعی رها کردی هم در بیت الله تو خدا بخاطر چی تا این واد رو اقامه بکنن تو های طولانی کرد ای خدایا قلبها رو اینجا بتتل بکن ای خدای قلبهای آدمیت رو اینجا با این قرباند آهان با اینجا خیلی وابسته بگردان و دواغ خدایا نعمت های غیبیت را و رزق های فراوان به اینجا به سرزمین برسان دعا فر بود و حرکت کرد و باب و خیلی دردنا ها جاری اینجا بود از آزوغه کمی دستونها بود تمام شده. آزوغه تا آب نیست اسماعیل علیه السلام تشنه شده زبان بیرون آمد حاجر علیه السلام در این که داره به سمش میده و از تشنگی در اینجا وابیلامی کده میره بال کوهی صفا از صفا تا مروه خیلی فاصله هست نزدیک نی حالا زیر صاحبان بزرگ قرار گرفته همیج باکول رہای بسیار بسیار غول پی کدر اونو خنک میکنن کفش کلن فرش سنگ از بالا پایین خنکی می آیا اما خیلی طولانی لی حاضر علیه صلاة و صدرون سنگ لاغتهای سیاه مکی مکرمه از بالا کوه صفا اونجا میرا نگاه میگه پشت صفا کسی هست نه نا میری کسی نیست فیل می آمد. وقتی که وادی بود خیلی سرازی شیبش زیاد بود که اسمایل نمی دید فرار کر می کرد می دید اونجا بالای مربی میاد اونجا نگاه می کرد نگاه می کسی اونجا نبود دوبار بر می گردد این ترا به تلف اسمایل نگاه می کرد می دید دست اون شیبیک قرار می گردد اسمایل پنهان می شد دوباره می دوید بالای کوه صحاب تا هفته بار بالا پای می رفت تو چون که نگاه می کرد که اسمایل جیبی می کرد زبان بیرون آمدی آب اینجا آتش نگی خداوند مطال بعد از هفت دوری که حضرت حاجر اونجا داد جبرئیل امین فرستاد و واقعی اونجا کوبید چاه زمزم را بیرون کرد چاه زمزم آمد آب بیرون شو اسمایش شو کاو خوردن مادر از اونجا ابو نگه حضرت زمزم زمزم یعنی واسطه واسطه آب تا فرار نکرد اگر این چیزو گفت این نهر رواری میشد در کل جهان جایام پیدا میکرد اما اونجا نگه هیچ داشت آ این آل هم غذا بود و هم آب بود م... پرندگان آمدند. کافری از اونجا راش شد. داستانش گویا میکنه. پرندی اونجا راش شد. کافرها وقتی که دیدن که اینجا فرندی هست، اینجا آبیه. این پرنده مرگ آب هست. دنبالش رفت درسته به اونجا. دیدن که مادر پسر اونجا هستن کودینها آب اجازه آب هست. گفت بله آب بود. اما آم مال شما آم مال ما هست. و حق خوردن دادی شما. قلبها وابسته. سکونه شروع شد. کم کم اونجا آمدند. حضرت اسمایل علیه صلات و روش کرد. هر روش تا اینکه به اندازه رسید که بدوی. ابراهیم علیه صلات و صلان دواره اجازه ملاقات گرید. خداوند مطال به جسود آبرو اسمایل رو میکن. این حسرت بچه که سالحاست در فراغ بچه بود. اول که بچه دار نبود. حالا رهاش کرد رفت سرزمین شام. اون جاک رفت حسرت دیدارش بود. سیش آب وش هم خواب دید که اسماعیل زدی بکن، اسماعیل قربانی بکن، اسماعیل قربانی بکن. شیرین ترین زمان بعدی زمان داری می ده به حرکت بیکنه در آغوش پدر خود را می آندازد و پیش پدر می آید. فلان ما بلغ ما عوضای وقتی که حال دومندی پدر که گفته یا بنا یا خواب دیدن که اینی از باهوکفان کفن مازات را. در ان زی بهت میکنم چه کار میکنی چی هست قبول میکویی یا نه؟ سبحان الله این پیغمبر زاده ای بود بسیار سنگین بچه ای که اینقدر در انتظارش باشی در انتظار دیدار باشی امر بیا رو قربانی بکنن بسرشو قهت بکنن اما پیغمبر بود خواب و دین و با پسرش در میان گذاشت پسری که در حسرت فراغ پدر رشد می اینجا انجام پدر یا ابت فعل معتومر پدر جار کاری گفته شده انجام بده اون امری که اللہ فرمودن رو انجام بده می بینی که من صبر میکنم فلما تل لہو لرجبین وقتی فیشانی اصبای رو زبین خوابان ندا آمد یا ابراهیم اصدق ترو یا خواب را شما عملی انجام دادین. نیازی به قربانی نیست. این همه قربانی ها قربانی ها بودن این قربانی حضرت ابراهیم بودند که اونجا خانو و بچه قربانی کرد جب برای کشتر قربانگاه آورد اما خداوند مطال نشان داد تا زمانی که محبوبترین چیزها رو فدار نکنید به اون محبوب واقعی نمی رسید. ابراهیم علیه سلات و سن باعث قربانی بی کرد تا اینجا اون صفات خلیل برای ابراهیم خلیل اونجا صدقه می کرد. ابراهیم کشمار مسلمان نامید. خودش تسلیم بود و فرمانبردار الهی بود. ما رو ابراهیم گفته مسلمان و خودش فرمانبردار کامیلی بوده. تسلیم در مقابل امر الهی بود اینجا. بعد نهار این رو قربانی کرید. پس حج هست. شتافتن به معبود واقعی هست. بر بگردیم طرف سرزمین حرمه. لبیگ لبیگ گویان احرام می بندن خود جال چه می گوین اللهم لبیگ. لبیگ لا شریک لکه لبیگ باری لا حاضرم حاضرم بطا وجود حاضرم گواهی بین شریک نیست الا ذات باری تعالی وجود دارد این لبیگ لبیگ گویان اشاغ الهی وقتی کسی عاشق انسانی می خود را در جبعه معشورش رسوا میکنه خود عاشق در مقابل معشوق احساس نمیکنه که من حالم چطور ح وار میشه خود را گم میکنه دست پا را گم میکنه و انسانی که عاشق به طرف معبود اصلی و معبود الهی برمیگرده الله رب العالمین لبیگ لبیگ و یار میگه که لبیگ الله و لبیک خدا یا حاضرم این حاضری و حضور مرا بپذیره و بدترین حالت برای هر انسان زمانی است که معشوقی او را نپذیرد دیگر ما تو نمیخانی تو دروغ داری میگی و آشق واقعی برای ذات باری تعالی همین است که اونجا لبه لبه گویان بعضی در سلف وجود داشتند که وقتی احرام میبستن احرام چرا میبندم لباسها را بیرون میکنن و در حالتی لباس و همزبان و همصدا و لباسهای کامل تسلیم میشنن ای خدایا ما لبه گویان حاضری که اینجا برای قربانی کرده نفس و جان خود به طرف حرامین پا میگذاریم بعضی صلاف لبیک نمی گفتند گفتند چرا؟ که ما می ترسید که بابیگ لبیک اللهم لبی باری لا من حاضر هم چه؟ خدا حاضر من از غیب ندا بیاد که لا لبیک ولا صادی این حاضری رو من نمی خواهم حالا من چه میگم؟ خیلی سنگین و خیلی درد آور بود که برای خیلی از علماء غیر یک اونجا وقتی که میرسن اینسا وقتی معشوقش میرسن دیوانی میشه اول بغل میکنن میبوستن و اونجا بیت الله بیمین صورت هم شروع میشه توا تواب اونجا حرکت میکنن شان بیرو میکنن بیت الله تواب میکنن و رحمت الله رب العالمینو طلب میکنن رحمت الهی و انوارات الهی تجلیات رب در اونجا می ریزن او نتواف می اونجا میرسه به حجر اسود و بوسه میزنه بر اون سنگی که از بهشت آورده شده و گناها و گناه زدا گناها رو می و دو چشم داره ایک روز قیامت برشوه گواهی می بعد از اون که این کار انجام داد میره به طرف آب زمزم آبی رو نوش می که الله علیه الصلاۃ سلام در خود برای اسماعیل نهار را کرده بودند از امین و مینوش بال کوی صفا میرود اقتدا میکورا به عمل حاجر که او که به خاطر امر الهی به خاطر کار خداوند متعال از همسر جدا شد از بچ جدا شد و در یه وادی ترسناکی که تنها کوه بود هیچ انسانی اونجا نبود اونجا می دیدی الله بخاطر الله رب العالمین بود خداوند متدسور می دید حالا شما حالا انجا بده وار این کور همون کار زنده بی, بی و قربانی و کارهایی که حاجه می کنید کارها رو برای خودتا انجا, انجا انجام بدهید. دهید انجا تأسیم می و تبا می کنید از کار علیه صلی و سلام بعد میذارن بیرون به طرف صحرای منا و عرفات دیوانوار اینجا دیوانوار میشن دو به طرف گشتن معبود الهی میگردن اون معبود اصلی ذات باری تعالی میرن به کوه دشت و بیابان منا میرن و از میلا به عرفات میرن و در صحرای عرفات اونجا با وا فریاد و دعا از الله رب العالمین اونجا مغفرت تلا میکنن نبی مکرم اسلام صلی الله عليه وسلم اون روز تا غروبش دعا میکرد و گوی میکرد. باید عبت طلب استفال می کرد و طلب هدایت میکرد.قروب با اندوار بر میگردن به تلف مززلففه و ش را در مزلففه استراحت کرده، روز بعد روز قربانی هست بعضی نفتهار رو قربانی میکنن بعضی حیوان قربانی میکنن. بعضی از طلف اونجا گهیکی از سلاملب وقتی که به اونجا رسی دعا که بار و وی بردن و ریک از احرام بیان بیرون باید قربانی بکشن و موها رو بر بدارن اما بار من گوسپند اینجا ندارم جان خود را آوردیم خدایا جان و منو بگیر و جان را منو قربانی بکن تا دیخان بیان بیرون داد دو روحش پرواز کرد صحرای خود منا جای قربانی قربانگاه اسماعیل علیه السلام و سلام حجا و جامیر دو و اللہ رب العالمی انعامی ده بیگه حالا جا قربانی کردید لباسها بپوشید سرها را بتراشید و حالا بری کلی گناه اشوارو بخشیدم. بخشید بهترین جایی که اونجا آیات الهی قرار دارن حرمه هستن بیت الله اونجا هست که در هیچ جای عالم بیت الله نیست تنها عبادتی که مکمیشه میشه تو بیت الله هست جای دیگه نمیشه تنها اونجا زمزم تنها اونجا هست عرفات تنها همونجا هست منا تنها همونجا هست حجر اسود تنها همونجا هست مقام ابراهیم تنها همونجا هست اینا تنها همونجا هستن آیات الهیان کس یک بار حج کرده خداوند بطلق حج او را قبول کرد الحج المبرور لیس له جزا الا الجنه حج مبرور حج پذیرفته شده پاداش فقط بهشت است پس بری بهشت الهی و این هست که حج قبول میشه پول دارید جمع کردید و ندارید بعدا جمع بکنید اما خاطر و آرزور سیدم مکه قلتی رو درست بکنی و سندازی مختصری بکنی خداوند مطابقش و حج نصیب میکنه اما ولی کار این کارو انجام بدید اگه این کارو بکنی حج نصیب میشه این چیزی بود که نبی کریم صلی الله علیه و خیلی اونجا عاشقانه توحید میکرد عاشق الا رب العالمین عبادت میکرد ان دیله اونجا رفتیان صالحی اونجا رفتیان و تمام آرزوی تمام قلب‌های مسلمانها هست های میهای پنجاب خدایوند همه ما و شما را زیارت حرمیں بار بار نصیب فرمایزد